فصل نه امام جعفر صادق علیه السلام مده امام صادق علیه السلام هر لحظه مده صادق آل عبا کنیم هر لحظه نام نامی او را صدا کنیم از هر روایتش برسد علم او به ما در هر زمینه گفته او اقتدا کنیم تنها رئیس مکتب اسلام صادق است دل را به سوی امن حریمش رها کنیم آری مثل وجود خودیم شب به لطف حق از فیض جعفر ابن محمد تلا کنیم در مده و وصف او که دو ست بیت هم کم است باید چگونه وصف گل مستفا کنیم این نجل مرتزا گل زهرای اطهره است آخر نشد که حق سخن را ادا کنیم کی می شود که در حرم و سحن باسفات باسوز و اشک روزه مادر بپا کنیم کی می شود که در حرم و سحن باسفات با سوز و عشق روزه مادر بپا کنی تقدیم به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شکر خدا دوباره شدم شاعر شما با پای دل دوباره شدم زائر شما دل با کبوتران حریم بقیتان پرواز می کند شود شما اقرار میکنم کنم که شمایید اشق ناب باید غزل سرود فقط خاطر شما راه سعادت و خوشی کل عمر را باید فقط گرفت از شعار شما شکر خدا که مهر شما در دل من است شکر خدا دوباره شدم شاعر شما